أعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نه اللهم و ونستغفرك و إليك و ونسلم و سيدنا و نسلم حبيبك الذي و في السماء بأحمد وفي فی السمای بعه احمد و فی با محمد والله اهل بيت المصومين المظلومين سيما الكهل حسين بقيه الله في الارضين الذي يملا الارزاق قسطا وعدلا كما ملأ الظلم والجور ولعنه الله على اعدائهم ومخالفيهم وقاتليهم وظالميهم اجمعين من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 والا اصحاب الحسین ان الله منتقم خون آقا با عبدالله الحسین آقامون امام زمان گوشه چشمی و نظر لطف نایتی به این مجلس داشته باشند با امضای قبولی حضرتش برسد، ما هم هممون نیت کنیم ثواب مجلس صرف تأجیل فرج آقامون بگردد شرط ادب را بجا وریم جهت جلب توجهات و انایات خاصه امام زمان به مجلس و محفل تأجیل فرج آقا تسلای قلب داغدار آقا سلامتی وجود مقدس آقا صلوات بلندی محبت کنیم عارز شد نیازمندیم به اینکه اولا تاریخ کربلا رو صحیح یاد بگیریم دوما صحیح تحلیل کنیم تا بتوانیم از دین دفاع کنیم از اربابمون خوب دفاع کنیم خوب الگوگیری بکنیم و خوب شبهات رو جواب بدیم که از هر طرف مورد هجمه است مکتب بیت و کردیم قضیه کربلا سه طرف داره یک طرف مردم وقتیم وقتی هم مردم میگیم یعنی از این عوام مردم تا اون خلیفه مرعونشون یک طرف قضیه خدا آقا عبدالله الحسین علیه السلام و یک طرف قضیه هم خداوند متعال جل و علاست دیشب راجب وضع مردم صحبت کردیم که دیدشون نسبت به امامت چه بود که این اینقدر بیوفایی کردن نسبت به سید و شهدا. امشب ادامه اون بحث راجب وضع فرهنگی و تربیتی مردم که چرا به جایی رسیده بودن بچه شش ماه را هم سر می بوریدن. چرا به جایی رسیده بودن که زن و بچه را اسیر می اینا مسلمان نبودن اینا قرآن بینشون نبود اینا قیامت رو باور نداشتن تو این موضوع چند دقیقه وقت عزیزان رو بگیرم. نکته اولین که در باب آموزش دین که قدم اول تربیت یاد گرفتن درست دینه اهل بیت خانه بودن پس نمی توانستن حرف بزنن با مردم بلنگو نداشتن تریبون نداشتن اطرافیان اهل هم تحت کنترل بودن به عنوان مثال بعد از قضیه سقیفه صحابه پیغمبر اکرم که حقایق را از پیغمبر شنیده بودند به شدت تو مدینه تحت کنترل بودن که نباید حرف بزنید نباید حدیث پیغمبر برای مردم نقل کنید هر کدام از این صحابه را هم به جهتی به مسافرت می رفت به سایر شهرها و بلاد می فرستادن هم خلیفه اول داره هم خلیفه دوم علیه مالا آنالله تحدید که نشنوم رفتی توی فلان شهر از پیغمبر برای مردم روایت نقل کرده باشی فقط قرآن اونم بدون تفسیر روخانی قرآن رو به مردم یاد بدید تمام نماز روزه یاد بدید تمام توضیح ندید که پیغمبر چی گفت که بعد شهن علی ابن طالب مطرح بشه شعون اهل بیت علی مسلام مطرح بشه بنابراین مردم قریب به اتفاقشون جاهل بار می آمدند نسبت به دین آموزش های دینی اولیه دستشون نبود آقا اینجوری بگم سیاهی لشکر مسلمانی بود مثل خیلی از مسلمان های امروز ما اسمت مسلمان باشه کافیه دینداراشون نماز بلد بودن دیگه می این خیلی داره. یه نمازی بلد و یه روزه میگیره این دوتا چه بلایی سرشون آمد چون دیروز از کردم تاریخ صحیح تحلیل صحیح حالا من از قول دشمن نقل کنم که دیگه اون اوج مچگیریه دیگه وقتی دشمن اعتراف کرده تو شرایط مناظره مخوای موفق بشی یکی از اون کارا اینه که اون حرفایی که خودشون اعتراف کردن اما اونا رو بذاری جلو چشمشون خودتون نوشتید خودتون گفتید من مکرر برای شما از فردی حرف زدم بالا منبر به نام انس مالک اهل سنت خیلی دوستش دارن قائلا از اصحاب نزدیک پیغمبر بود و نوشتن خودشون که 9 سال یا 10 سال خدمتکار داخل منزل پیغمبر بود یعنی اینقدر به شخص پیغمبر نزدیک بوده این آدم صاحب سر پیغمبر بوده به تعبیر اونها زیاد ازش روایت نقل میکنم بعضی وقت از دستش دررفته به نفع شیعه در فضایل امیر یه چیزای اعتراف کرده مثل حدیث تیره مشوی که الان نمیخوام واردش بشم این اناس ابن مالک اولی رو درک کرد و رو درک کرد سومی رو درک کرد مان پیر شد اون عنوان صحابه پیغمبرم احترامش میکردن تا زمان حجاج ابن یوسف هم زنده بود پیر شده بود یه نگاهی به وضع جامعه کرد گفت انی ما اعرف و شیعن این که میگم صحیح بخاری نوشته دیگه بالاتر از او ندارن انی ما اعرف و مما کان علی عهد رسول الله من از دینی که زمان پیغمبر داشتیم ما چیزی نمیبینم تو جامعه از دین اثری نیست دشمن داره اعتراف میکنه گفتن پیرمرد خرف شدی؟ قیل از بهش گفته شد که نماز رو نمینیم مگه ده ها هزار نفر نماز جمعه میان مگه این دین نیست چیه هزاران نفر تو هر نماز جماعتمون شرکت دارن دین همینه دیگه تو چرا میگه از دین چیزی باقی نمونده قال چی جواب داد علیسه صنعتم فیها ما سنعتم نماز پیغمبر اینجوری نبود هر بلایی دلتون میخواست سر نماز آوردید پیغمبر مثل شما نماز بخون ولو هزار آن نفر جمع شدید این نماز پیغمبر نیست همه ارکانش رو دستکاری کردید احکامش رو دستکاری کردید وضوش رو دستکاری کردید سئور با همچون مردمی مواجه نماز خوناش احکام نمازشون اینجوری سر و صدا بلنده بلد نیسته یه مورد دیگه براتون مثال بزنم معلوم بشه چه نوع مسلمانی بودن وقتی امیر المومنی علیه السلام به خلافت ظاهری رسید و از بسره جنگ جمل که تمام شد آقا تشریف بردن به کوفه تو این چند سالی که خلیفه بودن یه مقطع اصلیش رو ابن عباس رو گذاشتن استاندار بسره ابن عباس آدم ملایی بود شاگرد امیر بود الان هم که الانه شمنه نقل میکنه کاری ندارم آدمای ترسویی بودن ولی آدم ملایی بود قدیمام استاندار مثل الان نبود استاندار خودشون منبر میرفتن خودشون نماز جماعت میخوندن خودشون نماز جمعه میخوندن کاری خودشون قضاوت میکردن ماه رمضان شد سی شب تو مسجد جامع بسره برای مردم سخنرانی کرد. ممبر رفت ابن عباس شب آخر ماه دیده شد. معلوم شد فردا عید فطره. او گفت یکی دو کلم از احکام فردا اید فطر بگیم. گفت ایان ماه دیده شد فردا قبل از آخر اخرجو صدقت تصوم کم. این هم سنی نوشته نوشته. زکاة رو بذارید کنار فردا سو. نوشتن مردم به همدیگه نگاه کردن این چی داره میگه زکات فطره دیگه از کجا اومد حالا نشنیده بودیم و کان ناس لا یعلمون مردم نمیدانستند زکات فطره ای هم تو اسلام هست کوردهات نبود بسره اشایر نبود بسره بسره یه شهر مهم بود تو شهرهای مهم آدم ملا زیاده دستگاه خلافتم هم برای اونجا بیشتر اهمیت میداد منبریای خوب میفرستاد چه شده بود که در بسره به اون بزرگی اون هم بعد از بیست و پنج سال سه خلیفه اول مثلا شرق و غرب فتوحات و, و اسلام رو گسترش دادن مردم شهر بسرتون واجب معکدی به نام زکات فطره هنوز به گوششون نخورده خانه ناس لای علمون ابن عباس از بالا منبر دید اینجوریه گفت مردم از اهالی مدینه هم تو جمع شما هست یه باید دست بلند کردن گفت بلند شید برای اینا واجبات زکات فطره یاد بدی مردمی که زمان بعد از عثمان این بود میزان فهم دینیشون بعدش هم که 20 سال معاویه حکومت کرده نوبت رسیده به حادثه کربلا شما فکر کنید مردمی که جمع شدن سید الشهدا رو کشتن چی از دین میدونستن؟ اینو می میخواستم بگم. اسم مسلمان بود. الف بای اسلام رو بلد نبودن. سیاهی لشکر بودن. داخل پارانتز مردم مام همینی ما. جوون اگر از مذهب الفبای دینمون چیزی بلد نباشیم نمیتوانیم یاری دین خدا کنیم امام زمانم میشه مظلوم یکی از دلایل غربت امام زمان ما الان اینه که خیلی از شیعیانش جاهلند وظایف دینیشونو بلد نیستن الفبای دینشونو بلد نیستن رهبر وقتی سربازاش بدون اسلحه شدن این سرباز دیگه نمیتونه به رهبرش کمک کنه. بزرگوار فرمود برای بچه شیعه معارف دینش اسلحه من بچه اگه اسلحه نداشته باشم جلوی دشمن میکشنم اخلاص کافی نیست برای بچه شیعه. باید فهم داشته باشه. فهم شیعه چقدر دین تو بلدی، چقدر اصولو بلدی، چقدر فروعو بلدی، چقدر روایت بلدی، چقدر قرآن بلدی، چقدر از امام حسین مطلب بلدی، چقدر از امیر علیه السلام مطلب بلدی، این اسلحه شیعه است الان هی بگو من سرباز امام زمانم، سربازی که اسلحه نداشته باشه دشمن اونو راحتی شکست میده این معارف سپر ماست وقتی سپر نداشته باشیم اولین ضربه گلوله میخوره به بدن هم, هم خوانده است چرا ما نمیتوانیم این الفبای دین رو برای کودکانمون برای نوجوان و جوانمون منتقل کنیم بماند اما نتیجه اینه که شکست نتیجه غربت امام زمان او روز هم همین جور بود منو و شما هم تافته جدا بافته نیستیم آقا مردم علف بایدین را بلد نبودن امام حسین رو درک نمی کردن. تازه نماز روزه آزاد بود یاد گرفتن و خوندنش میگفتن حسین ممنوعه بحث از امامت ممنوعه بحث از ولایت ممنوعه بحث از شهادت زهرایت هر ممنوعه آی مردم نماز آزاد ها هرچی روتون میخواد بخونید بلد نبودن چی بخونن اونا هم که میخوندن غلط قلط میخوندن من یه وقتی ایام شهادت امام باقر امام صادق علیه السلام مطلب زیاد گفتم کار به جایی رسید هفتاد هشتاد روش نماز خوندن تو جامعه مطرح بود هفتاد هشتاد مذهب فقهی داشتن سنیا یعنی هر کس از جاش بلند شده بود یه نمازی درست کرده بود بعد بیست و پنج سال که امیر به خلافت ظاهری رسید اول نماز جماعت و مردم پشت سر المومن و خوندن تو مسجد نبوی در مدینه نماز که تمام شد امار گفت بعد 25 سال تازه یه نماز مثل نماز پیغمبر خوندیم گفتن چی میگی؟ که آقا پیغمبر از سجده اول که بلند میشد مینشست یه استراحتی می کرد استغفر الله ربی و عطوب و میگفت، دوباره می گفت. الله اکبر دوباره می رو سجده دوم این ستای مل اون اینو از بین برده بودن الان هم همینطوره از سجده دوم هم میشن، یه راست میرن بالا برای رکعت بعدی که بعد 25 سال یه نماز شبیه نماز پیغمبر خوندی خب این وضعیت اطلاعات دینی مردم وضعیت تربیتی مردم چی بود مردم که فقط با هم منبر که تربیت نمیشن که شما میدونید بچه تربیت کردن فقط با حرف زدن که نمیشه من الان برای بچهای خودمو جمع کنم تو خونمون هر روز منبر برم تربیت میشن نمیشن دو تا آمل دیگه هم لازمه یکی الگوه وضعیت اطلاعات که اینجوری یا جهله یا اگه چیزایی هم میدونن انحراف دستکاری شده است الگوا کیان دقت زمان سال شست ویک هجری که سید الشهدا و به و شهادت رسید تو جامعه بزرگ اسلامی الگوی مردم کیا بودن سلمان بود نه به خدا ابوزر بود نه به خدا اخه ما به قرآن مراجعه میکنیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم با تقواس با پرهیزگاری با دوری از محرمات و اعمال واجب در قرآن و روایات که مراجع می کنیم ما یخشد الله من عباد الالما هل یستو لزین یعلمون و لزین لا یعلمون میگه مردم الگوتون علما باشه الان من از شما به میفرمایید می فرماید شیخ صدوق شیخ توسی علامه مجلسی رضوان الله علیه مجمعی زمان ماموسین از مردم می پرسیدن اینجوری می گفتم الگوتون چیه مردم یک الگوی ما اون سردارانی هستند که ایران را فتح کردند که شامات را فتح کردند که به اسلام عزت دادند که کشور اسلامی را گسترش دادند اولین الگوی مردم تو زمان ما مسلمان ها فاتحان ایران و شامات و اون کشورهای اطراف بودند خب حالا اینا کیه با هم میشه فاتح ایران سعد وققاسه جوونا میگفتن ای کاش جاید سعد وقاص بودم. ای کاش منم مردی بشم مثل سعد وقاص ای کاش با اونا فامیل بشم ای کاش دختر اونا را خاستگاری کنم بگیرم ای کاش شهرت او رو داشتم ای کاش او رو داشتم ای کاش قدرت او رو داشتم خصو خب سعد وقاص مرده بود این ابوهت خانوادگی این منزلت خانوادگی رسیده بود به پسرش عمر سعد باورتون میشه زمانی که ما حسین رو شهید کردن الگوی جوانهای مملکت عمر سعد بود چرا؟ چون میگفتن یادگار همون سعد و قاسه خودشم پهلوانه خودشم اصلا به, در... به نظر من دلیل اینکه از این همه فرمانده امرسد و فرستادن به کربلا شد فرمانده کل لشکر ابن زیاد تو کربلا امرسد بود پهلوانتر از امرسد تو کوفه زیاد بود قویترم تو کوفه زیاد بود چرا امرسد انتخاب کردن؟ برای اینکه مردم برای امرسد و برای باباش الگو به چشم الگو نگاه می کردن. معلوم بشین دور او بیشتر جمع شدن او رو بیشتر علاقه داشتن تا اسم او و باباش می آمد، مردم مردم میگفتن بریم آدم مهمیه بریم مام سربازش بشیم تو این فضا امام حسین تنها میماند عزیزان تو فضایی که الگو تقوا و علم نیست الگو عمر سعد و پدرشه چه شهد تنها میماند یه مثال دیگه براتون بزنم فاتح شام خالد ابن ولید ملعونه اما نمیدونید مردم چقدر میپرستیدنش میگفتن رفت سمت روم مرزهای روم رو فتح کرد کشور اسلامی را به مرزهای روم رساند خالا مرده پسرش عبدالرحمن ابن خالد وزنه است تو جامعه چرا میگم پسر خالد ها اینقدر محبوبیت پیدا کرد اینقدر این پسر موقعیت پیدا کرد شهرت پیدا کرد معاویه ازش ترسید گوی اگر همینجوری بماند فردا جلومن هم وای مثل رقیب من میشه معاویه مسمومش کرد میدونید یکی از تاکتیک های معاویه برای تثبیت قدرت خودش این تمام رقبای تراز اول و از بین برد سعد ابن عباده را از بین برد، سعد وقاص را از بین برد، پسر ابوبک را از بین برد که اینم میگه بابا بوده برا ما رقیب میشه. یکی از اون افرادی که از بین برد پسر خالد ابن ولید، دقیقاً به خاطر اینکه مردم به این خالد ابن ولید احترام میذاشتن، پسرش هم برا مردم شده بود الگو زنده میماند، خطر داشت، معاویه گفت مسمومش کنیم یه مثال آشناتر براتون بزنم؟ مختار مختار چرا تو کوفه موقعیت داشت؟ به خاطر زهد و تقوا و علم خاصی بود. نه مختار از نظر مقامات علم و زهد و تقوا در ترجه اول نبود. خیلیا بالاتر از مختار بودن، خیلیا، اما می این پسر ابو عبید ثقفی است. ابو عبید ثقفی فاتح قادسیه است. ابو عبید ثقفی یکی از دو قهرمان است که قدرت اول دنیا یعنی ایران رو فتح زمان خلیفه دوم مختار موقعیت داشت تو مردم چون پدر پسر ابو عبید ثقفی بود او الگو بود بنابراین البته خود مختار شجا بود البته سیاست بود اما موقعیت پدر و فتوحات پدر ده برابر کرد موقعیت مختار. الگوها شدن این امام حسین تنها میماند دوم قسمت از الگوها ثروتمندان و پولدارا من خیلی قصه میقرم یادتون میاد اونایی که میان سالی همین هفتش ده پونده سال یه دفعه فوتبالی ایران هرفهی شد و قراردادهای فوتبالیستا میلیاردی شد میدانی چقدر از این مردم اونایی که تمکن داشته رو میذاشتن تو مدارس فوتبال که پسر من هم برسه به اونجا قرارداد میلیارده آیندهش دهمیم بشه الگو کیا شدن؟ فوتبالیستان تو همین مملکت شیعه خودمون چقدر از این مردم الگوهاشون هنر پیشهان هن؟ بذار بچه تو تو رشته بازیگری و چی و چی و چی تا مثل اینا مشهور بشه تا مثل اینا پولدار بشه برای اینکه به ذهنتون نزدیکتر تقریب بشه عرض کردم او زمانم همینطور بود الگوها دیگه شدن پولدارا وقتی اونا میان میدان کی برنده است بنی عمیه برنده است چون پول دست بنی عمیه است چون اشراف از اینان مراکز سروت رو اینا سال چنگ انداختن معاوی از اینا بود همه رو خودی رو گذاشت عثمان از اینا بود همه رو خودی رو گذاشت سومین قشر قشره الگوهای مردم شدن فرزندان خلفا نمیدونید چه احترامی داشتن پیش مردم این فرزند هیچی نفهم خلیفه دوم عبدالله ابن عمر برای مردم شده بود بوت نه یک ذره شجاعتی نه یک ذره غیرتی نه یک ذره ای در اسلام نه یک نفر جنگی جهادی آخه برای چی؟ چون پسر عمره اینقدر بزرگش کردن جلوی امیر جرأت کرد گفت آقا من با تو بیعت نمی کنم. یه تعداد محدودی با امیرالمومنین بیعت نکردن یکی همین مردی بود اما مردم دوستش داشتن تا کجا من از ذلتش بگم الانم که الانه ببینید کتاب های روائی اهل سنت ببینید چقدر عبدالله ابن عمر رو بوت کردن بردن بالا اما خودشون تو تاریخ نوشتن همینی که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد ماند رسید به زمان عبدالملک مروان پیر شده بود گفت مرگ نزدیکه پیغمبرم فرموده من ما تولم یعرف امام زمان هی ما تمی تل جاهلیه هر کس بمیرد امام زمان و خودش را نشناسد و بیعت و او برگردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده افسوس که من نرسیدم با عبدالملک مروان بیعت کنم او در شام من دورم نمیتوانم برم. چه کنم؟ برم عوض او با استاندارش بیعت کنم. موقع مرگ کافر نمیرم. مرگ جاهلی نمیرم. بلند شده در بار یوسف و استاندار. گو او اومدم برای بیعت عوض خلیفه با تو. اونم رو تق نشسته بود پاشو راز کرد. گو با پام بیعت. کسی که با امیرالمؤمنین پیمان نکنه بره با پای جاجب بن یوسف بیعت بکنه این الگوی مردم بودن این امام حسین چقدر مظلوم میشه تو این جمع که الگوهاشون اینا باشه مردم چجوری تربیت میشن یا از جهت الگوها سومین رکنی که تو تربیت مؤثره است اینکه که دیر آمدن بحث علمی از دستمون در نره برای تربیت سه تا رکن لازمه یک نظریه های خوب تربیتی تئوری های خوب درست اونی که به مردم آموزش ندادن حرف اهل بیت نباید به مردم برس دو الگو الگوهای مردم هم شدن اینا سه سومین رکن تربیت آقا حاکمانند متولیان امرند مجریان کلان اخلاقیاند فرمود الناس الا دین ملوکه مردم از حاکمان رنگ میپذیرند مردم تحت تأثیر اخلاق حاکمان قرار میگیرند حاکم کیه بیست سال معاوی است معلوم این مردم چجوری میان بالا چهجوری تربیت شدند عثمان بود قبلش عمر بود قبلش ابوبکر بود اونایی که کربلا جمع شدن سید و رو کشتن اسمشون مسلمان بودن ما ملت عمر بودن ملت عثمان بودن ملت معاویه بودن اینا رو امام حسین تربیت نکرده بود اینا رو امام حسن تربیت نکرده بود نتیجه مردمی بار آمدن تو سال 61 هجری معاصر با حضرت سید الشهدا بودن اسم مسلمان بی ایمان مردمم که بی ایمان شدند به جای آخرت دنیا رو دنبال میکنن چی میخوام بگم میخوام بگم مسلمانانی بودند دنیا طلب دنیا دست کیه دست یزید بنابراین مردم میرن سمت یزید مردم دنیا هر کجا باشه دنیا طلبی میره در همان خانه استاندارها رو کی نصب میکنه یزید بیت المال رو کی تقسیم میکنه یزید شهرت دستکیه تبلیغات دستکیه مسجد دستکیه محراب دستکیه امام ها را کی منصوب میکنه همه دست دستگاه خلافت بنی بنیومیه تو در خانه حسین علی چه خبره هیچ چی فقط آخرت مردمم که آخرت نمیخوان اصلا یاد نگرفتن آموزش ندیدن جوانان شما تو ماه رمضان تو سایر مواقع تو عدیتون دستاتون میبرید درگاه الهی معرف اهل تا به ما اینجوری یاد دادن اینجوری دعا کنید خدایا الله تجعل دنیا اکبر همنا هم خدایا دنیا را همه غم اصلی ما قرار نده خدایا نکنه جوری باشیم که فقط دنیا رو ببینیم آخرت یادمون بره نکنه همه زندگیمون خلاصه بشه تو درآمد نکنه همه زندگیمون خلاصه بشه تو قدرت نکنه همه زندگیمون خلاصه بشه تو شهوت نکنه تمام 24 ساعتمون برنامه ریزی می کنیم فقط برای گول زدن دختر مردم فقط برای پول بیشتر درآوردن، فقط برای معامله کلانتر کردن فقط برای از معاونت به ریاست رسیدن این شد بدبختی مسلمین زمان سید و شهدان. مردم اکبر همشون هم مغمه اصلیشون شد دنیا دنیام دست بنیام ایه است تعجب نداره که آقا حلم ناصر سید و بیمشتری بود. میشه. خیلی راحت میشه. من براتون دو تا مثال بزنم. کوفه مرکز تشیعه. اون زمان. مرکز خلافت آقا امیر المومین علیه السلام بوده. مردم کوفه مثل بقیه نبودن. دیده بودن آقا رو. عظمتش و اعجازش و علمش و شخصیتش و خیلی خیلی باید بالا می آمدن. اما وقتی دنیا زده باشی اینا که حضرت مسلم رو تنها گذاشتن بعدش هم گروه گروه آمدن کربلا فردا چندم محرم آقا؟ پنجم محرمه تاریخ داره تو پنجم محرم چهار هزار نفر کوفی به فرماندهی حسین بن نمیر وارد کربلا شد دیروز چندم محرم بود آقا سوم تاریخ نوشته سوم محرم چهار هزار کوفی به فرماندهی عمر صد وارد کربلا شد. هر روز چهار هزار پنج هزار شیش هزار بعدا که آقا را به شهادت رسوندن برگشتن کوفه سرزنشها شروع شد ها شروع شد, شد. نامردا چرا رفتی جواب اصلیشون رو ببینید شما خودشون نوشتن باز تاریخ خودشون جواب عمده مردم کوفه این بود خفنا ان ال ترسیدیم اون پول هایی که ابن زیاد وعده داده بود به ما نرسه به خاطر پول رفتیم به خاطر اتایا رفتیم به خاطر دنیا رفتیم چون ابن زیاد رفت بالای منبر همچون امروزی که گذشت هم دستور قتل سید و رو که از شرعه قاضی گرفته بود بالا منبر خوند هم وعده پاداش مردم برید که خزانه در اختیار شماست شروع شد صد نفر هزار نفر جمع بشین یه نمونه شخصی باز عرض بکنم از این نمونه هایی که مقاتل ما زیاد نوشتن است در کوفه به نام عبیدالله ابن هر جوفی از سرشناس های کوفه است آقا تو راه شخصا از این مردک دعوت کرد بیا به کمکم خیلی فرق میکنه یه دفعه من آخوند بیام از شما دعوت کنم بیاد به کمک امام حسین یه دفعه خود آقا بیاد از شما دعوت کن اثر خیلی فرق می کلام امام او شخص امام خجالت بیشتر میکشید تحول بیشتر میپذیرید یه دفعه من دمه در وایسن بگم آقا بفرماد مجلس اضا یه وقت ببینید که آقا قمر بنی هاشم استاد میگه بفرمایید خیلی فرق آقا از چند نفر خودش دعوت کرده به یاری یکی شامین عبیدالله رجبی چی گفت همین میشه مردم اون زمان را شناخت گفت آقا یک اسبی دارم تیز تک بخوای هر کس رو تعقیب کنی بهش میرسی از دست هر کس هم بخوای فرار کنی دست اهدی به تو نمیرسه آقا خودم نمیتونم بیام این اسب رو تقدیم میکنم رنگ سید و عوض شد و من پسر علیم من تو میدان بابام فراری رو تعقیب نمی کرد که منم بخوام تعقیب کنم اسب تیزک نیاز داشته باشه بابام تو میدان فرار نمی کرد که منم بخوام فرار کنم که به اسبتون نیاز داشته باشم بدبخ به خودت به کمکت نیاز داشتم یه اعترافی کرد راستشو گفت گفت آقا زن و بچه هم کوفن من بیام خدمت شما زن و بچه مسیر میکنه یه آقا املاکم باغاتم تو کوپس، اونا را تصرف میکنه خونم آتیش میزنه من هنوز از دنیا نتونستم دل بکنم نه دنیا آدم و زمین گیر میکنه بماند بقیه ارزم تا کجا زمین گیر میکنه تا کجا بدبخ میکنه فقط با سید و شهدات جنگیدن نه به خدا اینقدر این دنیا اینا رو پس کرد به شیش ماه هم رحم نکردن با مرد جنگیدن نه به دختر سه سالم رحم نکرد اینا مسلمان بودن آی مردم نمازخان بودن اما وقتی مسلمان نمازخان اینقدر پست شد وقتی از معارف دینش بلد نبود وقتی تربیتش اینجور آلوده بود آخرش به اینجا میرسه خدایا به خاطر خون رگهای عبا عبدالله به داد جوونای ما نسل ما برست خدا یا نکنه ما هم یه روزی از دین در بریم یه روزی از این تربیت ها رنگ بگیریم یه روزی مام زمانمون رو ما دست رد بزنیم که مام زمان به قاطر مال هم نمتونم یارید کنم نباشیم اینجوری اما همه این مسیبت ها بخوانم بر دوش زینب کبراست یه وقتی اگر دیدید که حال گریه دارید بشینید یک نیم روز کربلا رو فقط از دیدگاه دختر علی نگاه کنید کیا رو روانه میدان میکرد کیا رو تحمیل میگره همه این مصیبتها ها رو سر امول مساحب زینب اما وقتی نوبت برسید تو تا نوجوان خودش حوضا عوض شد هر دو پسرش رو طلبید به موی هر دو پسر شانه کشید آورد خدمت عبا عبدالله حسین این دو تن هست به دوران سمرم حسین دارو ندارم این دو تا بچه هست این دو تن هست به دوران سمرم هدیه بفرست به سوی پدرم حسین جان اینا رو بفرست خدمت پدرم امیرالمؤمنین بگو اینام فدایان تو شدند دیگه سراغشونم نگرفت برا رفتن سر نعش علی اکبر زینب دوان دوان رفت هر شهید رو صیدالشهدا میآورد زینب دوان دوان میومد علیاسغرم که آمد خواهرم تو این بدن رو بگیر من یواش یواش تیر رو. اما وقتی دید برادر دو پسر خودش رو داره از جنازه را میدان میاره بیرونم نیامد. حسینم چشمم به چشم حسینم نیفتی. برادرم خجالت نکش. اما آخرین شهید بنی هاشم قبل از سید سیدو شهده امشب میخوام بریم در خانه عبدالله ابن الحسن که سیدو شهده افتاده میان گودی قتلگاه؟ ابلفض رفته علی رفته حتی علی رفته اهدی نمونده از اونهایی که دیگه قرار به میدان برن آقام ززول جناه بماند وارده اون قصه بشم حال مجلس از کنترل من و شما خارج میشه افتاده اما یه جای گودی افتاده دور تا دورشو گرفتن سنگ میزنن، سیلی میزنن نیزه پرتاب میکنن من نمیتونم نمی به شما آرم برای شما اون لحظه ای که از چقدر نیزه زدن گردن آقا بعضی از دور پرتاب میکردن بعضی چسبیده به گردن با زور فشار دست اینا رو میخوام مقدمه چینی کنم برای امری و فضای فضایی عبدالله ابن حسن از خیمه ها بلند شد دیگه نمیتونم صدای حلم ناصر عموم و بشنوم و نرم غیرت بنی هاشمه یازده سالش بود جهادم براش واجب نبود از خیمه که فرار کرد زینب کبرا به دنبال این که هر چی این آقا رو بگیره نتوانست. هرچی صداش کرد عبدالله نرو پسر برادرم نرو نشد لذا زینب مجبور شد پشت سر این بچه آمد تا جایی که قتلگاه رو زینب دید جز معدود شهدا شهداییست که زینب شهادتش رو از نزدیک دیده بقیه رو نمی دیدم تو چادر بودن تو خیمگاه بوده دیگه تا جایی که می شد بیاد آمد ولی استاد اما عبدالله آمد کنار گودی قتلگاه لشکر کشیدن کنار یالعجب یال این آغازاده کوچولو نه زره داره نه شمشیر داره. این برای چی آمده؟ کشیدن کنار راه باز کردن خودشو تو گودال انداخت تو بغل اما همینجوری اما اما چرا به این وز افتادی اما اما بریم میتن اما بلندشو بریم خیمه هم آمام داره نوازشش میکنه که تفله خیلی مصیبت رو عمقش رو آقا نمیخواد به این طفل بیان کنه. این وقت بهر ابن کعب آمد که کار آقا رو تمام کنه با شمشیر. این دید شمشیر داره میاد رو سر عمو دستشو جلو داد. وایلک ای ابن الخبیث اتقتل امی. مگر بکشی شمشیر فرود آمد و دست این تپل. برید دستو از پوستش آویزان شد. این وضعیت که افتاد خود شو رو آقوش آمو یا اما به دادم برز کاری از دست زید شهدا بر نمی آمد گرف دلداریش میداد دلداری چیه؟ عبدالله هم یادگار حسن هم چند سالی سب کن به بابات ملحق میشی. چیزی تا شهادت باقی نمونده آقا جون هر مله زانوش رو زمین گذاشت فقط نگید هر مل علی اصغر را زبه او من الوزونه للوزونا ن دقیقا همون کار را با عبدالله ابن الحسن دقیقا تیر به گلوی عبدالله ابن الحسن دقیقا عبارت مقاتل زبه یعنی عبدالله ابن الحسن را زب کرد دیگه زینب تاقت نیاورد. داشت صحنه رو میدید رس رو گذاشت به سمت قتلگاه و ابنه و سر و برادرم جان برادرم عبدالله یا تانی الموت اعدمن الحیات ای کاش امت مرده بود این تو نمیدید عبدالله ما گذار کنم همه شهده رو سید و شهده خودش برد جلوی خیمه ها علی ازقه رو خودش برد تحویل زینب علی اکبر هم عبار رو جوانهای بنی هاشم گرفتن بردن قاسم رو چسبونده بود به بدنش بود. شما به من بگید عبدالله رو کی برد میتونید تصور کنید از این به بچه چقدر برا زینب کفرا گریه کنید بولا ای که به هم به مظلومیت برادرش نمیتونی از جا بولی حسینم حسینم و هم نمیخواد این بچه اینجا بهماند بهماند و زین کش میکنه خدا یا بولا زین استراحت زیناب عجله ولی یه کالفراد عجله مامان المظلوم الفراد عجله سعیدن الغریب المهموم الفراد